خب 35 سال مرگ برای آمریکا گفتند حالا به نماز یعنی امام های کشور دستور دادن که آقا نگین دیگه مگه بر آمریکا ولی خب یک سری هم میرم میگم مرد تو همین نماز گذشته شروع کردن طرف شعارش نداد ولی یه بخشی از جمعیت شعار دادن که بعضیا میگن خود اینا هم از نوچای خامنه ایه و اون داره برخورد و دوگانه میکنه برای اینکه اینا چی میگن دستگاه های اطلاعاتی و سرکوب جمعه اسلامی چی میگن یک پشر در فضای لایتنایی میزنه چطور نمیتونه آدمایی که مثلا کفش برداب میکنن یا میان تو نما جمعه برخلاف دول خواست دولت و بقول خودشون خواست رهبری میان شعار میدن خیلی راحت میتونن اینا رو یه تلفن بزنن که خفشین برخورد دوگانه هست ولی سیاست رسمیش در واقع حس فشار مرگ بر آمریکاست چون ه سال پ سال مرگ بر آمریکا گفتن شد مرگ بر خودشون اما نه دیگه کسی نخرید کالاهایشونو کسی نخرید پولایم که داشتم به لوکه شد حالا افتادم به دست پا بنابراین اون دو رویدادی که من گفتم یکی این بود که تحریم ها نتیجه داد فشار های سیاسی جان نتیجه داد و اینا تسلیم شدن خب البته طرف مقابل هم کوتاه اومد یعنی مثلا الان نگاه بکنین من همین خبری بود امروز در سایت ایران گلو زدم که استقبال آمریکا از حضور ایران در مذاکرات صلح سوریه خب این یه رویداد مهمیه تا به حال امریکا میگو اصلا خود ایران ب... بخشی از پروبلم بخشی از مشکله ولی امریکا و خوصیم بار اعلام کرده که ایران با پذیرش رسمی بیانیه ژنو، که درخواست تشهیل دولت انتقالی در سوریه در آن مطرح شده میتواند در مذاکرات صلح برای سوریه شرکت کند. ببینید این تغییر نقش جمهوری اسلامی یعنی این نشون میده که مذاکرات پشت پرده از یه سال پیش بود البته میگم مذاکرات پشت پرده چون پشت پرده است چیز بدی نیست من به نظر من مذاکره دیالوگ امروز به یک خواست مشخص تبدیل شده به یک فرمی از مبارزه تبدیل شده خب تا دیروز امریکا میگفت ایران خودش از مشکله ولی امروز میگه آقا جان ای امریک ای امریکا از حضور ایران در مزاکرات صلح برای سوریه استقبال میکنه ولی اینجا گفت که ایران قبول کرده که دولت بشار اسد در واقع سرنگون بشه یعنی گفته ایران با پذیرش رسمی بیانیه ژنو که درخواست تشکیل دولت انتقالی در سوریه در اون مطرش داده میتونه شرط قادر شده جمهوری اسلامی هم قبول کرده اینا بهش میگن بقول یه رو بدبستون های دیپلوماتیک هست از طرف دیگه 13 آبان نزدیک الان مهر هست 16 مهره تا آبان تقریبا 25 روز فرصت داره نیروهای مخالف عادیسازی جمهوری اسلامی با امریکا در تراک این هستن که بیان دست به تظاهراتی بزنن علیه امریکا جلوی سفارت و دوباره مسئله بسازن که به نظر نمی برای این که هم دولت و هم نیروهایی که در رهبری جمهوری اسلامی هستن رسیدن به این که با اون سیاستی که آقای احمدی نژاد دنبال کرد و آقای خامنه ای از اون حمایت کرد این همه اینها رو میبره به قول آقای روحانی تو یک کوچه بنبست. براورد این اپوزیسیون به نظر من باید بیان شرایط جدید رو تحلیل بکنن، یک درک جدیدی از اوضاع سیاسی داشته باشن و متعاقب اون تاکتیک های خودشون رو ارائه بکنند که به نظر من این تاکتیک ها برخواسته های مشخص مردم مردمی که در انتخابات شرکت کردن یا نکردن تحریم کردن یا شرکت کردن ولی در جشن به اسطلاح پیروزی اومدن شعار آزادی زندانیان سیاسی دادن در مورد سیاست هسته‌ای خامی اعتراض کردن دهنکجی کردم به اون و انتخاباتم نشون داد که این آقای 11 درصد آرا رو به دست نیاورد این وضعیتی هست که ما الان باش روبرو رو هستیم من خودم فکر می کنم که یک سری پارامترها تو خاورمیانه نمود پیدا کرده آمریکا و کشورهای غربی حراس کردند و اون هم وقتی که در سوریه میبینیم که خب اول واقعا مبارزه برای دموکراسی بود مردم میومدن تو خیابون و با همون فیلمای یوتیوب تظاهرات کردم ما نمی‌خوایم ما آزادی می‌خوایم و از آقای اسد خان بودن که پایان بده ولی آقای اسد اونا رو سرکوب کرد بعد کشورهای منطقه از ترکیه و عربستان و قطر پول و سلاح ریختن حالا چی شد؟ نتیجه این شد که آه بخش عمده اپوزیون که مسلحانه داره در سوریه می دست بالار داره و اونها نزدیک ترین نیرو به القاعده اصلا اعلام کردن و در این مبارزه شیعه و سونی که بعد از جریان حمایت جمهوری اسلامی از اسد عباد بسیار وحشتناکی رو گرفته که ما امروز شاهد هستیم که در اراق روزی پنجان نفر 100 نفر کشته میشن واقعا آدم های بیگناهی هستن آخرینشام امروز بود فکر کنم یا دیروز بود که بچه های رو در واقع چیز کردن کشتن یه این یا در پاکستان و همین طور در عراق و کشورهای دیگه این وضعیت هست آمریکا که سوار شده بود روی بین یعنی از جنگ سنی شیعه به گونه حرکت کرد که رفت پشت سنی و علیه شیعه امروز فهمیده که از توی سنی القاعده است که درمیاد و نگاه می کنیم در پاکستان پاکستانی که دولت آمریکا از دولتش حمایت میکنه این دولت حمایت مالی میکنه حمایت سیاسی میکنه دولت پاکستان به طالبان افغانستان رو کمک میکنه و از بعد حادثه طالبانی که در پاکستان هست و علیه دولت مبارزه میکنه میگه این طالبان بده اونی که اون طالبانی که توی پاکستان توی افغانستان علیه آمریکا و نیروهای افغانی عمل میکنه میگه اون طالبان خوبیه خب در همچین شرایطی با توجه به اینکه اکثریت مردم ایران نه فانتمانتلیستن نه اسلامگران و نه صدای من هست دوستان. صدای من. ب. بنابراین این جنگیر لقایی خوش اومدین. امیدوارم که وقت بگیرین و در رابطه با موضوع امروز صحبت بکنیم. من زیاد صحبت کردم. فکر می‌کنم که آره. موضوعم یک بار دیگه بگم در رابطه با تغییر نقش جمهوری اسلامی در منطقه و سرنوشت شعار مرگ بر آمریکا امروز که شنیدین رابطه اولین قدم ها برای عادی شدن رابطه ایران و انگلیس برداشته شده و توافق شده که در حد کاردار، کاردار غیر مقیم بین ایران و انگلیس برقرار بشه این حداقل کمک میکنه به اون هزاران ایرانی سرگردانی که به نبود رابطه، واقعا زندگیشون متلاشی شد در انگلیسی ها دانه که همینجوری موندن یعنی هیچ سفارتی عملا کارهای کنسولی اونها رو اجرا اگر هم بکنه مثلا شما حساب کنید چقدر هزینه برای اونها درمین برصورت من دست دموکراتی دموکراتی تا خوب باشید راستش بس <تصفح> به نظر من مسئله رابطه آمریکا با ایران نیست یعنی در واقع بحث اصلی اصلا نیست بحث رابطه نیست چیزی که این مشکل الان پیش آورده بین ایران و آمریکا مسئله اتمی است اصلا شاید مسئله رابطه به خصوص که کشورها با هم رابطه دارند اصلا تو نیست یه رابطی طبیعی بشه چرا؟ برای اینکه به نظر ما من فکر میکنم هنوز توهم داریم به اینکه جمهوری اسلامی دوستان هویتش موجودیتش تمام به این چیز ضد آمریکایش بستگی داره. حداقل در صحنه جهانی خارجیش دارم میگم اون چیزی که مردم دنیا، دارن نگاه میکنم من کاری ندارم اینا پشت پرده رابطه دارن یا ندارن چیزی نیست ولی حوییتش اینطوری داره نشون میده یعنی جمهوری اسلامی که بره سر رابطه با آمریکا دیگه جمهوری اسلامی نیست بالاخره این رابطه یه سری قراردارتها رو میخواد یه سری پیشرتها رو میخواد جمهوری اسلامی ماهیتاً نمیتونه زیر این پیشرط ها و های سیاسی و فرهنگی و آزادی حدود آزادی ها بره <تصفح> چون اگه بره دیگه نمیمونه اون مشروعیت خودش رو دست میده و جمهوری اسلامی دقیقاً میدونه یعنی به این راحتی فکر کنید یه رابطه میشی مثل ترکیه و آمریکا یا باقی یه دیگه بلاخره من اگه میخوام با یه جایی رابطه داشته باشم توی رابطه یه سری مسئله یه سری رابطه های فرهنگی یه سری آزادی ها لازمه اگر اون رابطه برقرار بشه دوستان جمهوری اسلامی موندنی نیست حتی اگر دو در درصدش باشه تبقیه مردم میره بالا تبقیهات میره بالاتر الان مردم دنیا میگن سی و سالی یا مردم داخلی حتی اینطوری براشون جا افتاده سی و پنج سال جمهوری اسلامی زد الان هم تو نماز ها دارن مرگور آمریکا رو میگن چرا نمیگن دارن میگن هر روز مردم حتی اینطوری گرفتن یا تو سطح جهان کسایی که به جمهوری اسلام اعتماد و اعتقاد دارن مسئله زد امریکایی گریش نمیتونه به این راحتی بذاره کنار نمیتونه راحت ارتباط برقرار کنه تو و لعنتش میکنن حداقل میگن تو سی و پنج سال حبیعت دین بود الان گذاشته کنار اصلا بذاره کنار دیگه جمهوری اسلامی نیست حوییت جمهوری اسلامی ضد آمریکایی گریشه یعنی اینا یه ذره به ذره کنار دیگه نیست موجودیتش دیر سال میره اینا جمهوری اسلامی میدونه دقیقه اگه الان در هایی میکنن سر این مسئله است اتفاقا با آمریکا. بحث ها اینقدر چیز سر همین مسئله موجودیت جمهوری اسلامی است اگه خبرها رو بخونی میگه نباید تخریب ما نمیخوایم رژیم‌ها به صلاح تعویض کنیم یعنی نمیخوایم از بین ببریم یعنی بیشتر سر فشار سر است از... بعدم آمریکا کاری نداره تو داخل سرکوب بشه ادامه هم روزی 4 5 نفر هم باشه هیچ اشکالی براش نداره می‌خواد این مسئله اتمیش دست به سلاح اتمی ظاهرم پیدا کن که اینا خودشونو بحران سازیس در سطح جهان دارن این کارو میکنن جمهور اسلامی یعنی هنوز بعد از 35 سال اپوزیسیون باید تبهم داشته باشه هنوز اخواش سفت و سخت مونده توهم داره به این که نه جمهور اسلامی میتونه رابطه داشته باشه میتونه تغییر کنه قابل تغییره به نظر من این شکلی نمیشه نگاه کرد اگر خوب رابطه بگیره خوب رابطه مثل ترکیه و بقیه چه باشه دیگه نمیمونه جمهوری اسلامی نمیمونه عدقه از این جد و اینو تمام مشاورون و سیاست که تو جمهوری اسلامی هستن دقیقا اینو میدونن نمیتونن تکون بخون باید این حووییت رو داشته باشند. و اینکه از بین بره من خواستم فقط اینو بگم طبه هم نداشته باشیم دیگه فکر میکنم به این جمهوری اسلامی داخل بازی هاشون نشیم. یه اتفاق میفته یه بحرانی پیش میاد سری هم تصمیم خودمون خودمونو نمیگیم من فکر میکنم جمهوری اسلامی قابل تغییر و تسلیم نیست یک درصد عقب همون یک درصد مردم میدیزن رو سرش میخورنش خودش هم اینو میدونه نگرانی و ترسش تمام از داخل ایرانه نمیتونه امکان نداره و اگه که جوری جور دیگه این را باید از بین برد برای تغییر جمهوری اسلامی فقط باید مردم بلندشن بتونن اینو از بین ببره نه این رابطه ها میتونن از بین ببره موجودیت جمهوری اسلامی تمام هویتش. به خاطر همین زده آمریکایی گریش در سطح دنیا بهارو من میخواستم اینو کوتاه گفتم شاید بس بقیه دوستان هم چیزی دیگه نگاه کن. خیلی ممنون خب مرسید دوم عزیز با درود به دوستان و با خوش آمد به اتاق فرهنگی گفته کن پاشای عزیز پاشا جان بر خب میکروفون در اختیار شما خیلی ممنون جناب آقای جانگیل، کیانوش، دلیل و دیگر دوستانی دی در روم هستند عرض عدد دارم خدمتی که شما امیدوارم که خوب و سلامت باشید. نخیر من سوال داشتم از آقای کیانوش راجب مسئلهی که بیان کردن میخواستم ببینم که جمهوری اسلامی اگر با آمریکا میخواد کنار بیاد، به نظر شما با کدومی که از این حزبایی که در آمریکا هستن، با ها کنار میخواد بیاد یا با ها یا با تمام حزبایی که در خود آمریکا هستن، تمامش موافقت جمهوری اسلامی است و قواعد اسلامی که شیعی که در ایران هستش که جمهوری اسلامی در برابرش استادگی محکم کرده و این شیگه رو به صورت اکسپورتی به کشورهای دیگه مجبور کرده به صورت دادن باج به صورت دادن اناوین مختلف نفت‌های مجانی و صادرات‌های های مجانی به این کشورهای اسلامی فقیر که امروز قوت گرفتم و قدرت گرفتم نسته که در آفریقا شما شاهدش هستید که جمهوری اسلامی در هر کدوم از اونا رخنه نکرده و علامتی بذاشته برحال مسئله اینجا که آیا جمهوری اسلامی با آمریکا موافقت بکنه مسئله ایران حل میشه در برابر حکومت مذهبی در دنیا یا حکومت مذهبی در اشعیت هست و قابل قبول دموقراتی جدید شده یا آیا این سیستم اقتصادی جدیدی که در دنیا به وجود آمده که از معادلات قدیمی و اقتصاد قدیمی برگشته و به حالت فینانسیل در دنیا ارائه شده در خدمت مردم و این کشورها حالتی فینانسیل به صورت اینکه قرض دادن بدون بهره و مردم رو به صورت این مدجون خود اقتصاد کردن و مجبور کردن به کار به خاطر اینکه قرض دادن رو البته این سیستم بسیار جدید اقتصادی که دچار نهنگامی های بسیاری در این دو دو سال آینده خواهد شد و به صورتی از بین خواهد رفت یعنی منفجر خواهد شد چون این فینانس سیستم اقتصادی که در دنیا امروز به وجود آمده کسانی که دانشمند اقتصاد هستند میگن که این واقعیت اصلا در مدت طولانی جوابگوی یک جامعه و یک دولت نیست بدون بهره به مردم قرض دادن و این حالت ها به وجود آمدن و ایجاب اکسپورت کار در کشورهای کارگر ارزان سوء استفاده از این مسائل کردند می‌بینن که دوچار بمبت شدن و این باعث یک تفرقه در خود کشورها شده در حال حاضر جمهوری اسلامی حالتی دیکتاتوری و فاشیستی رو داره کشور شوروی و چین هم نماینده دموکراتیک در دنیا نشدن کشورهایی هم که نماینده دموکراتیک هستن الان همشون از فینانس جدید و اقتصاد جدید به صورتی در دگرگونی هستند. که میبینید وضع وز یونان وزی پرتغال وزی ایلند وزی انگلیس وزی خیلی از کشورهای اروپایی در حالت دگرگونی اقتصادی هست منظور اینی که با کنار آمدن با جمهوری اسلامی آیا قبول کردنی یک حکومتی هستش که بر اساس خرافات هست قابل قبول دیپلماتیک و فرهنگی جدید حکومتی در دنیا است من نمیدونم اینو چطوری شما می‌خواید بازش بکنی به هر حال مسئله دیگرگونی الان در خواهر میانه بسیار است شما میبینید که هر اتفاقی که در خاورمیانه افتاده باعث موفقیت نشده. همش باعث هنجاری و هندوژی و نابسامانی کشته شده. افغانستان، عراق. کشورهای دیگهی که دوره بر هستن رو میبینید و دیکتاتورترین کشورها کشورهای عربی هستن که خودتون شاهد این مسائل هستید اون مسائل رو چطوری میخوان حلش بکنن در این جهنم عربی و این سیاستی که حال داره مردم بعضی از کشورها که شما شاهدش هستید میبینید که مردم ایرانی مردمی که از کشور ایران هستن حال دارای معلومات بیشتر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی از این کشورهای دیگر هستند، نه که من بگم برطری کشور در چه حالی هست. این ملت برحال مجبور شدن که دنبال اطلاعات دنبال واقعیت ها دنبال منطق دنبال مسائلی که در جوامع دی... جوامع سیاسی دیدن رو دنبالش برن و دوبال مسائلی صحبت بکنن که واقعا راجع به سیاست هست. ولی با مردم اون کشورهای دیگه که شما صحبت میکنید راجع به سیاست باور کنید که هنوز به هفتاد سال قبل ایران نرسیدن. یک منافع دیگه ای رو اونها در نظر دارن و حکومت های دیگه ای رو در فکر و افکارشون میبینن. در حال این که کم باسترش بکنید خیلی خوشحال میشم. بفرمایید میکروفون خدمت شما جناب آقای من با اجازه جانگیر من میاد آره با اجازه جانگیر که ادمنی اتاق رو بوده دارن دیگه بودم مصیما فقط پاسخ پاشا رو بدم بعد اون دوست قبلی که مطرح کرده بود که مرگ بر آمریکا هویت جمهوری اسلامیه بنابراین این نمیتونه هویت خودش زیر سال بره من فکر می‌کنم این در دنیای سیاست همه چیز میتونه تغییر پیدا بکنه حتی هویت ایدئولوژیک طرفم آره مرگ بر امریکا نمیگه بقول قول خودشون میگفتن ما یه زمانی میگفتیم مرگ بر شوروی، مرگ بر روسیه مرگ بر امریکا روسیه رو عصف کردیم حالا امریکا هم عصف میکنیم فعلا مرگ بر اسرائیل رو نگه میداریم شاید یه روزم مرگ بر اسرائیل وارد بردارن این تو سیاست به هر شورت تناسب قواست که تعیین کننده است منم تو صحبت هم گفتم گفتم آجان دوتا تغییر ایجاد شده دوتا رویداد مهم اتفاق افتاده در ایران و پیرامون ایران یکی این که تحریم ها نتیجه داده فشار سیاسی دنیای غرب نتیجه داده و جمهوریت اسلامی به یه جای رسید که نه یک دونه دوست غیر از بشار اسد و حزب الله لبنان کسی رو نداشت و بنابراین این بناظر می رسد که عاقلان نظام نشستن تصمیم گرفتن و اینکه رویه خودشون رو سیاست خودشون رو عوض بکنن اومدن گفتن نرمش قهرمانانه خب بنابراین این موضوع سیاست رو حتی وقتی میخوایم تحلیل بکنیم باید به نظر خودم باید رئال ریال پلوتیک یا واقع نگری در سیاست پیروی بکنیم جمهوری اسلامی هم یک چیز تافتی جدا از بافته نیست وقتی ببینه مثل اون زمانی که خمینی بود و اون همه قدرت نفوذ توده ای داشت رسید جنگ ایران رو گوه من جام زر رو می کشم بالا دیگه نمیخوام برم ادامه بدم خب تموم کرد اینا هم همین کاره کردن اسمشون رو خب اون گفت جام زر این گفت غرم. نرمش قرمان بنابراین اصلا تر نیست مگر یارو دیوانه است وقتی ببی ببینی که ساخت سلاح هستی تبدیل میشه به مرگ خودش خب میگه خب حالا موقتا دست میکشم شاید حالا یه روزی دیگه ای درست کردم اما در مورد سوال پاشا که مطرح از سوال خوبی هم بود که آیا ایران میخواد با کدوم هز به توافق برسه من فکر می کنم که حالا شاید اونایی که تو امریکا هستن امریکا رو بهتر بشناسن یا کسایی که متخصص مسئول امریکان من فکر می‌کنم یک سری سیاست ها توی امریکا سیاست های استراتیجیکشون هر دو حضر در واقع به یک شکلی میرسن من فکر می‌کنم که درست تلاش های آقای اوباما، آقای اوباما همون اول که اومد اروپا، فوری بهش جایزه نوبل دادن. که اینو با بوش یعنی سب جداش بکنن که ادامه نده. خب ببین همین امروز آقای کارزای که اگر بخوایم درست معنی کنیم، دست نشانده امریکا بود در افغانستان. طرف یه داری بوده توی امریکا شد رئیس جمهوره که آدم خوبی هم هست به نظرم خیلی کارا کرد هیچ اشکالی نداره ولی امروز امریکا رو متهم کرد که این ناتو و امریکا علیه منافع مردم افغانستان حالا نمیدارم پشت این داستان ها چیه نتیجه بگیرم اینه که الان درص حزب دموکرات سر کار آقای اوباما سر کار جمهوری اسلامی هم با همین داره مذاکره میکنه ولی فردا اگر این بره یه دولت جدید بیاد فکر نکنم سیاستها عوض بشه چون یک سری سیاستهای تو آمریکا حالت استراتژیک داره یعنی نمیان دولت بعدی نمیاد اگر توافقی بین ایران و آمریکا صورت بگیر بگه خب پس تا حالا آقای اوباما بود حالا ما دوباره تحریم رو از میگیریم دوباره میخوام جمهوری اسلامی رو سرنگوم بکنیم من اشاره کردم که اتفاقاتی در منطقه افتاده هم افغانستان که سال 2014 آمریکا میره همین الانش طالبان تا دروازه های ریاست جمهوری توی کابل اومدن تا بیخ بوش فرماندهی نظامی ناتو اونجا میان عملیات انجام میدن پاکستان داره کمک میکنه پاکستانی که کمک مالی میگیره از امریکا به نظر من دو طرف با هم سازش کردن امریکا و جمهوری اسلامی سر یه سری مسائل با هم دیگه دارم بدوستون میکنن حالا باید اطلاعات دقیق داشته باشیم که متأسفانه هیچ کس نداره این اطلاعات که این مذاکرات تا کجا پیش رفت، چه جوری بوده. بنو از اون حالت ایدولوژیک در بیایم. یه دوستم بالا نوشته من از سیاست نمیدونم اکثریت و حزب توده و نمیدونم فلان من چیکار دارم اکثریت و حزب توده میخوان هر کاری بکنن بکنن. اولا که تو خود اکثریت تو خود حزب توده احضار شاخه شده هر کدومم یه نظری دارن اون چیزی که خودم نگاه میکنم واقع نگرايي واقع نگری رو نگاه میکنم میگم ما حتی اگر این که میگیم آقا جمهوری اسلامی به عنوان یه حکومت دینی باید بره منم طرفدارشم این یه طرف این استراتژیته اینکه ما بیایم با رابطه ایران آمریکا مخالفت بکنیم بگیم نه حتما باید این رابطه صورت نگیره تحریم ها باید باشه من با این مخالفم برای اینکه اولا نه آمریکا و نه جمهوری اسلامی حرف تو رو گوش نمی برام برم بگن خیلی خوب کیانوش گفته یا دلیل گفته که تحریم ادامه پیدن نه اونو منافعشونه تناسب قوات توی منطقه بگونه عمل کرده که هم امریکا هم جمهوری اسلامی دارن خطشون رو به هم نزدیک میکنن در درزه اینه بگم میکروفون رو بدم دست دوستان و اینه که توی امریکا و ایران هیچ وقت یا ایران و روسیه اسرائیل به بلاز استراتژیک دشمن همدیگه نیستن ایران فروشنده نفته آمریکان فروشنده خریدار نفته نفت و گاز الان گاز الان مهمتر از نفته آقای جانگیره بعد. ایران میخواد تکنولوژی نفتیش رو از امریکا بخره اون فروشنده خریدار بنام دشمنی بین ایران یا بین ایران و مثلا اسرائیل چه دشمنی میتونه باشه هم مرزیم که نیستین الان جمهوری اسلامی از طرف کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی، حوزه خلیج فارس و کشورهای همسایه دیگه مورد تهدید ارزی قرار داره تو باکو برنامه شده بود که آقا تبریز و آذربایجان جونی مال ماست این الان برش مهمتره یا این که بره با اسرائیلی همه به نظر من جمهوری اسلامی هم میخواسته بم علیه اسرائیل رو بحانه کرده در واقع میخواسته قدرت خودش رو بده و نگرف هم کشورهای عربی باش درگیر شدن ترسیدن از مسلح شدن چیز اتمی ایران هم کشور اسرائیل بالاخر مجبور شد که کوتا بیاد جانگیر جان شما اگر میخواین میکروفون بگیرین من مایکرو آزاد میکنم خودتون تقسیم بکنه یا دلیل میخواد صحبت بکنه یا میکنم دلیل صحبت بکنه برای اینکه دموکراتیس یه بار صحبت کرده برخورد این شما و این م... خب مرسی کیانوش عزیز و با درود مجدد به دوستان حاضر در اتاق نوبت دلیل هست دلیل جان الان نوبت شماست نمیدونم من چون دست دو نفر آها توه خیلی خوب خب جناب دموکراتیوس میکروفون در اختیار شماست مرسی راستش من سر میکنم کوتاه صحبت کنم و به دفعات مختلف خب ایشون دی سی شدن دلیر جان پس شما میخوای صحبت بکنید دیگر الان میکروفون در اختیار شده از. حالا شما یک کمی صحبت کن من بعد صحبت میکنم دلان دوستان روز و روزگاه خوش مرسی جاگیر عزیز دموکراتیوز عزیز برگشتی به من خبر بده من قد بکنم من قبل از این که جاگیر و کیانوش عزیز بیان و شکری عزیز مسائل زبط رو شروع کنم، و اینا یه چلقه ای داشتم صحبت, صحبت میکردم برای دوستان حوله هویت و ذات کثیف رژیم جمهوری اسلامی دوستان یا خواهی وقتی کیانوش عزیز میگه که ما مثلا این کار بکنیم، کارو بکنیم این ما رو باعثی شر بده که منظورش کی است اولا که ما هیچ مسئولیتی برای به حساب حمایت از رژیم جمهوری اسلامی نداریم چرا؟ چون سی سال ما رو از وطنمون رانده از این مسئله شوخی نیست این مسئله هم است، هم اجتماعی یعنی هم ما ضربه شخصی خوردیم از رژیم هم ضربه اجتماعی و وطنمون بوریده شدیم و تمام امکانات و زندگیمون بايصاب اصلا پاشیده شده خب و 4 میلیون 5 میلیون هم هست رژیم جمهوری اسلامی اگر مثلا در جایی با راه داده بشه که مثلا در مذاکرات زرد دخالت کنه خیلی خنده داره رژیمی که جز ترور و وحشت و سرکوب کار دیگه نکرده حالا میخوان ببرنش خوشحال میش آقا جانکری مثلا میگه که به ایران به ما چه بر بود آقا جانکری چه میگه مگه ما مثلا حرفی میزنیم برای ایران اصلا آقا جانکری میزنه نه دوسته عزیز مگر ما وقتی حرف میزنیم برای ایران از قبل آقای نتانیاهو حرف میزنیم نه دوست عزیز ما از نظر دلیل حرف میزنیم ایشون از نظر جهانی حرف میزنه دیگری از نظر خودش حرف میزنه این ما اگر منظور جهان... کیانوش عزیز این تیف آپوزیشن است ما هیچ ضمانتی ندادیم که از جمهوری اسلامی دفاع کنیم هیچ و تنها کاری که ما باید بکنیم دنبال کردن مطالبات مردمه و حقیقت رو گفتنه لطفا من این جواب بدم خب با درود بند چون دلیل تا تلفن جواب بده من الان میدم به شما آقای دموکراتوس دلی جان به حال فکر کنم شما هم گوش بدید یا ممکنه نظر خیلی دوستانم ببینید یه وقت هست ما بر علیه جمهوری اسلامی هستیم من فکر نمی کنم که کیانوش هم مثلا تو صحبتاش این بود که بخواد سر به تن جمهوری اسلامی باشه ولی یه موقع هست واقعیت هایی که داره در جهان میگذره یعنی ما بر اساس اون چیزی که داره در جهان میگذره به هر حال ما هم میبایست از اون وضعیت تحلیلی داشته باشیم یعنی شما دشمن رو باید بدونید در چه وضعیتی هست چه تاکتیک رو میخواد به کار ببره همینطوری نمیشه به اصطلا یک حکومتی اونم از دو ایدئولوژیکش به این شکل توتالیتری که داره واقعا عمل میکنه بخواد دادم همینطوری به همین سادگی براندازیش بکنه خب سی و چه ساله بر حال ما با این درگیر هستیم بیشه گفت همه خیلی چیزها را از دست دادن و مهمتر از هر چیز حداقل حد تا الان دو نسل در واقع فنا شده در اون جامعه که میتونست پیشرفت داشته باشه و اگر تازه به فرض اینکه، در یک سال آینده تازه میگم فرضی این بره دو نسل دیگه طول میکشه تا این جامعه بتونه در شرایط جهانی اون موقعیت که باید پیدا بکنه پیدا بکنه بنابراین این رژیم خیلی صدماتی زیادی به ما زده اما باید صدا یک تو دو میشه دوستان آها، باید این اه، اه، به اصطلا شرایط رو دید یعنی این که اگر اینها با امریکایی ها کنار بیان یا با قرب کنار بیان ممکنه چه پارامترهای تغییر بکنه یه چیز روشنه و اون اینکه کسانی که واقعا خواهان این رفتن این رژیم هستن پامتر اینکه این رژیم باید برود که تغییر نخواهد کرد بلکه تاکتیک هایی که اه اه حالا، باید به کار ببرن اینها در واقع تغییر درشون به وجود میاد نه اون اصل مسئله من این طوری فکر میکنم یعنی البته از وسط های صحبت های کیانوش که صحبت اون هم در همین راستا بود که الان که اینها با امریکا وارد مذاکره شدن چه چیزهایی تغییر میکنه و افوزوسیان حالا من از دید این صحبت میکنم افوزوسیانی که میخواد این رژیم واقعا برود و این رژیم رو در واقع به تاریخ بسپورتش خب حالا چه تاکتیک هایی رو باید داشته باشه یا چه پارامتر هایی ممکنه تغییر بکنه این هست که روی این مسئله من فکر می‌کنم بیشتر صحبت بود نه اینکه و من نظر خودم این هست اگر اینها با قرب نزدیک بشن نه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی یا این سیستم ماهیتن تغییری درش بوجود بیاد یعنی بخواد یک نوع پوستندازی اساسی بکنه ولی توی این روابط این مجبور به ارحال آوانسایی رو بده الان این رابطه ای که حالا اگر اگر اینها با قرب بتونن حالا قرب حال امریکا در واقع در رستش هست کنار بیان i niski قرب کوتاه آمده این بار جمهوری اسلامی هست که داره دوباره حالا این جامع زهرو رو با یک نوع دیگه یا یک جامع دیگه می نوشه و این تغییر من فکر می کنم به نفع اپوزوسیون خواهد بود یعنی به نفع نه اینکه ماهیتون عوض بشه بلکه خود همین تغییر موزهی که اثر تاکتیکی در رابطه با قرب میده میتونه یک فرصتی رو بده که شاید مردم به هر حال اگر به پا یا شرایط طوری به وجود بیاد که به طور قطع درست اینا الان به هیچ وجه حرف از حقوق بشر نمیزنن و یا بسیار بسیار گاه گاه این طرف اون طرف ممکنه یکی از مقامات رسمی اینها در سطوح بالا صحبت از وضعیت حقوق بشر هم بکنه اما به طور قطع روی این مسئله هم اینها مجبورن یعنی رژیم اسلابی مجبوره تشدید نظر بکنه یعنی مثل سابق شاید به اون شکل نتونه عمل بکنه نه اینکه نخواد نتونه این دو با هم دیگه فرق داره در نتیجه این میتونه فرصتی باشه برای نیروهای اپوزیسیونی که میخوان میخواهند این رژیم برود خب من نمی دونم آهای آه دموکراتوس شما وضعیت میکروفونتون یا پیستون درست شد الان می صحبت بکنین یا نه اگر میخواین صحبت بکنین که خوب بله میخواین صحبت بکنین بسیار خوب حالا من امیدوارم که این بار دیگه میکروفون شما یا پیزه شما و هر حال براتون مشکل درست کنه میکروفون در اختیارش. مرسی جهانگیر عزیز من نمیتونم چه اتفاق پیش مفتاد. افتاد. <تصفح> به حال من نمیتونم هپکم اصلا قابل شنیدن بود یا نبود. میخواستم اینو عنوان کنم. الان این تحریمی تحریم که شروع شده در رابطه با جمهوری اسلامی سر مسئله اتمیه. سر مسئله آز... نبودن آزادی حقوق و بشر تو جامعه ایران نیست اینو ما باید در نظر بگیم اگر این مسئله حل بشه مسئله اتمی، جمهوری اسلامی کتاب بیاد که میاد آیا این رابطه که قرار با آمریکا گرفته بشه چه منفعتی برای جمهوری اسلامی داره همونطور که جهانگیر عرضیز گفت آیا جم... آزادی های فردی آزادی اجتماعی تو اون جامعه صورت میگیره آیا اپوزیسیونی اصلا میتونه وجود داشته باشه حتی در سطح خیلی پایینش میتونه باشه اینا است که باید جواب داد ولی تاریخ جمهوری اسلامی هویت و موجودیت جمهوری اسلامی ایدئولوژیک بودنش و اینکه همه چیزش از رو آسمان میاد نه از رو زمین این اجازه را نمیده جمهوری اسلامی نمیتونه ببینه یه اپوزیسیون مخالف خودش اونجا هست که میخواد همه چیزش رو نقد کنه حتی میگم ما که رابطم برقرار بشه با آمریکا آمریکا خواهان این نیست که جمهوری اسلامی رو وادار کنه آزادی های فردی حقوق تو اون جامعه اجرا بشه اگر بشه جمهوری اسلامی رفتنی دوستان یعنی اصلا اون چیزی که به اسم جمهوری اسلامی دی که موضوعیت نداره آیا جمهوری اسلامی زیر این روابط میره به نظر شما؟ به نظر من نمیره اگه بره میره رفتنیه موجودیتش زیر سوال میره بس سر اینجاست کسایی که میگن اپوزیسیون باید نگرششو عوض کنی نسبت به اوضع احوال جامعیران به نظر من توهم دارن هنوز بالا سی و پنج سال هم کسی درک نکردن که جمهوری اسلامی امکان تغییر توش نیست حتی از داخل خودشون هم اومدن یه سری تغییرات جزئی این اجازه رو به کسی نمیده چرا با اینقدر انقدر تبهم کی کیارش عزیز کیانوش عزیز میکرد جمهوری اپوزیسیون باید نظرش رو تغییر بده یعنی چی؟ یعنی چه تغییر بده؟ یعنی برید پشت جمهوری اسلامی؟ یعنی برید برید جمهوری اسلامی تغییر میکنه آزادی های آدم ها رو به رسمیت میشناسه اینا سوال دیگه با توجه به ماهیت و موجودیت و تمام اون چیزا ایدولوژیکی که جمهوری اسلامی پشت اون قایم شده و داره طبق اون مسئله داره جامعه رو میچرخونه به نظر نمیشه جمهوری اسلامی فقط تنها چیزی که به نظر من راهلی که جلوش هست باید بره از کلیتش باید بره قابل تغییر نیست به هیچ شکل مرسی خب مرسی الان نوبت دلیل هست بله البته من دیه، دیه، فکر کنم یه توضیح کوچیکی دادم آها آه آه نه الان نوبت واسه پس اگه شما نمیخواید صحبت کنی بعدم و من فکر نمی کنم منظور کیانوش این بود که جمهوری اسلامی باید بماند من اینطور برداشت کردم که به هر حال این رژیم باید برود ولی شما وقتی تغییراتی که در جامعه ایجاد میشه تاکتیک ها رو در حال باید دادم تغییر بده یعنی این نیست که همون تاکتیر سی سال به پیششیم داشت هم همون یعنی با توجه به تعویض وضعیت نیروی مقابله یا اون دشمنی که در مقابل شما هست شما آرایش در واقع حمله های خودتو باید به نوعی تغییر بدی من این طوری برداشت کردم و تصور کردم و این من فکر کنم این درست هست یعنی آدم در هر شرایطی اما این به معنا نیست که حداقل خود من این رو دارم میگم فکر میکنم نظر کیانوش هم همین بود و نظر من این هست که خب در این شکی نیست که این ریژیم باید برود ولی این باید برود رو شما یا هر کسی یا هر نیروی اپوزیسیونی که وقتی چهار سال یا 5 سال یا ده سال با یک رژیمی درگیر هست نوع برخوردش در سال اول با سال دهم ده که داره رژیم فرض کنیم میره یکی نیست نمونه‌هاش هم در جهان زیاد هستند دیگه که به هر حال بعد از سالها شاید خیلی هاشون بعد از دو دهه به هر حال رفتن ولی 20 سال یا 25 سال مبارزه در جلوش بوده ولی اون چیزی که در سال اول بوده با اون چیزی که در سال 20 بوده تفاوت داشته خب از عزیز شما دستون افتاد الان نوبت شماست آ راستو بعد میکروفون در اختیار شماست. بعد با معنی اونم دوستانی که مخالف جمهوری اسلامی هستم بنده هم هستم من میگم که اولا یه سیاسی یا یه سیاست مدار یا یه فعال سیاسی که خودش رو در مقابل جمهوری اسلامی میبینه میگه خب هدف من چیه هدف من وسیله من نیست هدف من اینه که در ایران کشوری داشته باشیم که مذهب و سیاست یا بهتر مشخصتر بگیم سیاست و دولت جدا از هم باشه در کشوری داشته باشیم که مثل همه کشورهای آزاد دنیا انتخابات آزاد باشه مثل افغانستانی که اتیاج به شورای نگبان نداره هر کسی میتونه با جمع وری چند هزار تا امضا بیاد خوش کاندید ریاست جمهوری بکنه خیلی دور ندیم افغانستانی که ظاهران هزار, هزار سال از ما عقب تره از لازه رشد اقتصادی اجتماعی فلان الان رسیده به انتخابات آزاد بنابراین این هدفه من فهم کنم هر نیروی دموکراتیکیه یا ترین خواست همه مخالفین دموکرات ایران هست خب اینکه ما با اصلایی به این هدف برسیم یا به یک قیام سراسری برسیم یا حتی مثل افغانستان یه دولت خارجی بیاد در واقع حکومت رو چیز بکنه اینها هیچ کسی نمیتونه پیشبینی بکنه نه هیچ که میتونه راجع به این شیوه و چیز در واقع شرط ببنده خب یا اینکه مثلا من میام آجان یه موضوع هست و اونم اینه که مسئله حسه ایران مسئله تحریم ها مسئله رابطه با غرب یعنی بین جمهوری اسلامی این هست خب دولت میخواد بره رابطه با غرب بگیره آیش شما مخالفین بنده نمخالف نم نیستن میگم برای کف هم میزنم بفرما میخواد بره تحریم ها رو لغو کنه رابطه مناسبات چیز بگیره من مخالفتی با این نمی کنم مخالفت من با رای کره شمالی رفتن جمهوری اسلامیه که درهاش رو ببنده مثل کره شمالی بره بمبات هم درست بکنه مردم رو به یونجخوری و گروسنگی و بدبختی برسونه بنابراین همیشه یه سیاست مدار باید هدف رو جلوی خودش قرار بده من از سیاستی که آمریکایی در پیش میگرن خیلی خوشم می اون نگاه میکنه در افغانستان داره با طالبان میجنگه در قطر میره باش مذاکره میکنه ایران رو تحریم کرده در این حال میره مثلا رابطه تلفنی هم میگیره یعنی نگاه میکنه میگه آقا یک قدم تو ورده یک قدم من بردارم. خب این رابطه دولت هاست آقای اوباما هم گفته گفته آقا ما کاری به مسائل داخل ایران نمیخوام داشته باشیم اینکه میخوایم مرد و شما میخوایم سرنگون بکنیم بفرمایید برین سرنگون بکنیم ما میخواهیم مسئله دنیا اطمینان پیدا بکنه که جمهوری اسلامی اضرای اتمیلی میخواد بسازه اگه این کار مطمئن بشیم نفتش میخریم پوولش از بلوک در میاریم باش مناسبات فرام می خب شما میگیین آقای اپوزیسیون شما میگین چی؟ اینجا این یه تاکتیک مناسبه ما با در بیاریم میخوای بری سرنگون کردن که فقط شعار نیست که حرف نیست که توی پالتاک نیست که سرنگون کردن نیرو میخواد کو نیروت؟ بیار تو خیابون بگه آقای جمعه از بی خوباً جمهوری اسلامی رو نمیخوایی. جمهوری اسلامی که 35 سال شعار مرگ بر آمریکا داد تبدیل شد به مرگ بر مردم ایران مردم به گروسنگی کشیده شدن اگه من و تو هیچ نگرانی نداریم مردم ایران واقعا بخش بزرگی فقیر شدن در همین دو عرض دو سه سال گذاشته مردمی که می اومدی تو ترکیه میرفتی تو تایلند تا پر ایرانی بود می اومدن یه دور کنسرت میذاشتی توی نمیدونم دبی نمیدونم تو پی فلان سطح‌های اداره فعلا دیگه خبری نیست نمیتونن بیان آره 20 درصد مردم امچنان ثروتمندان در ایران به قول یکی اومده بود از ایران میگفت که چرا میگین تحریم تحریم الان هشتاد درصد دکترای ایران توی تهران دماغاشون عمل کردن پس چیزی دارن که پولی دارن که برن مثلا 10 میلیون 8 میلیون بدن دماغ عمل کنن در اروپا هم تو همین نمیبینید اینه که ما باید این وضعیت شکاف طبقاتی بزرگی که در ایران بر اساس تحریم ها ایجاد شده رو درک کنیم با مردم درک کنیم و همین الان من داشتیم یه مقاله رو نگاه میکردم رضا تحقیزاده بود خب ایشون تو مسئله هستهی خیلی به نظر من کارشناس برجسته‌ایه. الان یه مقال نمشته گفته آقای فکر نکنم که هیچ چشمندازی از مذاکرات ژنو باشه یعنی اینا به توافق نمیرسن هیچ معلوم نیست هیچ معلوم نیست که اینا این طرف یا اون طرف بازی رو به هم نزنه ولی ظاهرا داره پیش میره منم می کنم که مثلا در سوریه خب تو میخواییم حکومت اسد که تنها حکومت سکولار رو بزنی بعد جاش القاعدی بید خب واسنده منظورم اینه که این به این معنا نیست که جمهوری اسلامی ماهیتش عوض شده، دموکراتیک شده، گلوبال بول شده ما براش کف می‌ذاریم نه در این عرصه میگم آقا جون برو زو تای رو بعد مردم از گرسنگی در بیار تویی که مسئولش هستی تویی که 235 سال شار مرگ بر اسرائیل دادی می‌خواستی اسرائیل رو از کره جغرافیا ها ورداری تو مسئول هستی حالا ذره زیادی نزن نرم میشه قهرمان اونها اون فلان اینا نه باقا تسلیم شدم خب برو مایتش هم اینا همه کار میکنن اخون جماعت همه کار میکنه یارو مثل اون داستان این بود که زنه مردم اومد آخون توی خونه دیده یه وسط غالی کنده شده گفته این چیه زن چرا کندی گفت بچه شاشیده من اینو نیکردن گفت بابا منو برای مردم گفتم برای خودم اون که نگفتم که یه آب میزدی تمومی شد میرفت بابا اینا اینا اینا هیچ پرانسیبی نداره مزام نمیشم جانگیر جان ماک در اختارشون خب مرسی کیانوش <تصفيق> عزیز با درود مجدد باد به دوستان دوستان عزیز در بحث شرکت کنید و به هر حال فکر کنم موضوع روز ماست و میشه در موردش های زیادی رو کرد خب دلی جان امیدوارم که دیگه این بار کسی تلفن نزنه بهت خب تا بعد میکروفون دار. دل... مرسی سلام عرضی کنم دوستانی که دازه آوردن ممنون از رادیو، الورز عزیز که برنامه رو زب میکنن چند وقته به دست من نرسیده البته مموی عزیز که دوربینش زده بود سینایی عزیز دوربین زده بود این دوربین هم مسئله جدیدی جوره. خب دوستان نگاه کنید صدای من هست دوستان دوستان صدای من هست من این همه پیروز جا مرسی دموکراتی عزیز مرسی عراض عزیز مرسی نگاه دوستان این مایی که کیانوش مطرم میکنه میگه ما ما اصلا در محاسوبات رژیم منظور نمیشه اونا اینقدر مسئله دارن که ما به کلی از خاطرشون رفتیم و خوشحالتر میشن اگر امروز بمیریم تا فردا این از ما حالا یک ادعاست مثل این لابی که الان آقای روحانی گفته که ما باید سان‌دیس خورای آمریکا رو تقویت کنیم و از این حرفا میرن مثلا خیر حسن داهیر میگیرن حسین رو میگیرن اون رو اذیت میکنن علی دای... با با با با هزاران کاری که حماتون شنیدید خب اینها اگه منظور از ما اینوایی اینایی که مثلا الان هی میرن و میان که آقای کریم مثلا امروز اینو بگه آقای اوباما مثلا تلفن بزنه ما با اون کاری نداریم دوستان نگاه کنید چاموش میگه دارن جلو میرن ممکن ممکن ان باشه اصلا مسئله نیست برسن برسن نرسن نرسن دارم ارزی کنم نگاه کنید ما بر هر ملاکی حساب کنیم اگه بخویم مثلا آدمی باشیم که مقابله مست میکنه عرض کردم اونا الان مثلا وقتی ما قرق میشیم دو دریا گش میگیرن فرمانده سپاه پاسداران میگه خوب شد این زنده انقلابو غرق شد این کسیه که داریم راجع بهش حرف میزنیم دوستان که ما ما اون مایی که شما میگیم ماها با هم فرق داریم یه مایی هست حمید تقوایی حسن حسامه نمیان عباس توکل این علیزاده است یه مایی هست که مثلا این یارو که حسن داری رو 300000 دلار پیادش میکنه که بره دادگاه ما که میگیم باید بگیم این ما کیه که داریم میگیم این مایی که من فکر میکنم جمهوری اسلامی به طور کامل از یاد برده این مایی که من هستم آه؟ از خداشی که برم بندره باز یه گلم بزنه تو کلی منم پشت خب حالا چرا من کبش واکت بزنم براش نگاه کنید دوستان اینا کتابای در سیل تغییر دادن از بچه دبستانی شستشوی مغزی دادن الان سی و چهار ساله دارن این کاره میکنن کنن و چهار ساله اینا شستشوی مغزی دادن یا آقای سازگاره آمده یه مقاله نوشته پرش از روی <تصفيق> سر گربه چون بعد آقای اسمایل نوریالا آمده جوابش داده امشب به هر دو مقاله رسیدگی می کنیم فصل زودگذر مطالبات الان نگاه کنید به سران اپوزیشن همه دارن مثلا احباز توقل تو همون برنامه داره میگه که مطالبات این به اینجا آمده خفت مطالبات مردم که می... چرا میکشه اپوزیشنی که اینجوری مثل موش توی دست کسبه تا گیر کرده و داره خفه میشه به هیچ جایی نمیخوره این اپوزیشن دوباره باید قیام کنه حالا یا از فلتاگ یا از فیسبوک یا از پردا یا از تو واشنگتن یا از تو کاخسید یا از توی یونان از هر جای یا از کوهای کردستان از یه جای باید بلند شه از حالت موشی در بیاد خب حالا شما میگیم نه، موشترش بکنیم. این حرف بعضیاست. بس راهامون با هم متفاوته عزیز. فقط باید اینو اقرار کنیم. میگه باید موافقت کنیم که ما با هم موافق نیستیم. انگلیسی مسئله داره میگه باید موافقت کنیم که ما با هم موافق نیستیم. تمام شد ر. من و شما اون مایک میگیم فرق داره با هم. ما صدای کی هستیم؟ یا صدای کی میخوایم باشیم؟ ما صدای کارگرانیم صدای زنان دربندیم صدای کودکان در خیابانیم صدای کورتهای روی داریم صدای معلمین تارمار شده ایم صدای ف... کسانیتی که از فرق دارن زدجه ب... با آسمون میره ب... خورد شدن خمیل شدن به قول پروانه فروت میگه خورد کردن ملتو. ملت رو خفه شده استفاردان ما صدای اوناییم ما, ما صدای آقا جام نیستیم دوستان عجب ما با اینجا توضیح بدیم. ما صدای آقای نتنیاهو میذیم هرچند که آقای نتنیاهو دارا کرده بسیاری از هر باش درست میگه میگه این رژیم داره به تلف کره شمالی رفتن میگه من اینا رو همه ده سال قبل از آقای نتنیاهو گفتم که این رژیم اگه بمب اتم بگیره میندازه تو دانشگاه تبریز این رژیم اگه بمب اتم بذاره چه میندازه روی ماریوان 10 سال پیش گفتم میگین نا برید فایل های فرنگ گفت و گرو بکنید آقای نتنیاهو میذگه گوش میده به حرف ما شما که نگاه کنین دوستان این شستشوی مغزی که اینا دادن کلاویلشون چیه این سیزده آبان چیه یه قسمت از بحثی که امشب داریم راجع به سیزده آبان. که آیا مثلا این سیزده آبان اینا شعارهای مرگ آمریکا رو میخوان نگه دارن یا میخوان بریزن سطلاش کن وقتی تو کتاب درسی گذاشتنش یکی میگن که مسئله 28 مرداد 32 که اون دیگه همه تون یه نیز لازم نیست وارد بحث بشی هم که اصلا متنفران به مرزی که بحث 28 مرداد از خانم آلبرایت بگید متنفره تا همه متنفران که ما از حرف میگن خیلی وقت گذشته 200 سال درصدی که اینا هر موقع مسئله برایشون پیش میاد میگم میگن ببینیم تاماس جفرسون چی گفته تاماس جفرسون کی بوده 250 سال بی زندگی میگرد ما تا حرف یکی میزنیم که 50 سال بی زندگی میگرد این به حرفا قرنه شده مثلا مصادق قفاته نمیگه یکی اینکه به خاطر مسئله 28 مرداز 32 یکی به خاطر این است که میگن رفته اونجا سه واقعه در 13 آبان اتواق افتاده این سه واقعه چه بوده؟ یکیش این بوده است که شاه رژیم شاه در زمان شریف مامی دانش آموزان ما رو به قدر با تیر مستقیم ما این چیزا رو باید یاد کنیم به مردم نه اینکه که هسته ای داره یا نداره غنی شده 17 درصده یا 20 درصده تا 11 در سقنی کرده اینا به ما مربوط نیست چون اگر هم به فرض به ر... انرژی هسته این رژیم دست میدا کنه چیز نیست مگه شاید تونست تمام جوارات سلطنتی به دوزه ببره باید بذاره تو اومن میکرده بره خب ما اون قسمت کار نداریم که این داره چه کار میکنه در اون قسمت ما به این قسمت کار داریم به چه قسمتی؟ به اینکه یه انقلاب در ظرف یک هفته به زده انقلاب تبدیل شده. ما با این کار داریم بعد 38 سال داره ادامه میده این زده انقلاب داره 35 سال ادامه میده اگر قد کنه اگر تغییر کنه اگر بچه خیابانی نبینیم اگر دوزدی رو نبینیم اگر زن رو اینجور زلیل نبینیم که به این روز انداختنش خب ما همش خفه میشیم ما هم ساکر ما که مریض نیستیم که بیان بی خودی چیزی که نیست بگیم ولی تا وقتی هست ما صدای اون هستیم. نا صدای آقای متدی یعقوب، نا آقای جانکری. آقای جانکری خودش تعیین میکنه که چه صدایی باشه، چه بگی. شما رژیمی رو که جو جنگ و ترور و اعدام و حبس و شکنجه و شلاق و پاره کردن کار دیگه بلد نیست. اینو شما میخواید یه شرکت بری در کنفرانس صلح. که تمام مدت داری میگی که خودت به درستی 10 سال، 15 سال داری میگی که این کارش تقویت تروریسم در منطقه. ای چطور میتونه یه پای مذاکرات سر باشه حالا آقای جانکری برقصه تو خیابون به ما چه شیاموش عزیز میگه مردم رقصیدن تو خیابون وقتی روحانی آمد دوست عزیز اون مملکت 75 میلیون جمعیت داره 18 میلیونش اصلا رأی نداد 11 میلیونش به این رأی نداد اونایی هم که رأی دادن 9 نفر آوردن تو خیابون‌های مشهد اینا رقصوندن شما چهار تا میمون که رقصی در ملا قرار میدی به رخ ما میکشی نه دوست از این ما داریم میدونیم با کی طرفیم و ما میدونیم چه راهی رو رفتیم سی ساله هم این راه همونطور که از کردم شخصی هم اجتماعی هم وظیفه ملی ماست هم وظیفه فردی ماست این راهی رو که داریم میریم بریم حالا اینا چه میگن میگن 28 مرداد میگن تلاش کرده شاه رو برگردونه ب... یادتون باشه در زمانی که شاه مریض شد آقای کارتر میخواست بیارش آمریکا و معالجش کنه تحت اموال مارش. اینا رفتن ریختن اونجا و سفارت جم... چیز گرفتن جمهوری اسلامی خواستم خواستن بگم نه سفارت امریکا رو گرفتن میگن تأسیس سواک برای سرکوب جوانان انقلابی اینا رو تو کدابه درسی گذاشتن مشی غیر انقلابی و مماشادگونه دولت بازار بازربان و میگه وقتی ما دولت مماشادگر بازرگان زدیم کنار نیروهای خانواده به انقلاب اسلامی مرتقب بودن آمدن کار گرفتن اینا حرفاییست که اینا درست دادن به بچه‌ها 30 ساله خل اصلاح گروه های که خود را ضد امپریالیس میدانستن یعنی میگه که ما با این کارمون رفتیم گروگان گیری کردیم رفتیم سفاراده آمریکا رو گرفتیم چپارم خلیسه کرد چون یکی از بذار یکی از چیزایی که خمینی قول داده بود به کارکر و در نامش سریعا گفته این است که من تمام نیروهای دموکرات و آزادیخواه که آزادی سرشون میشه آزادیگی سرشون میشه تمام از بین میبرم و تمام اون به نفتی هم که داریم با مجانی 5 دلار یا 11 که همین قولش هم عمل کرد تا وقتی خمینی زنده بود خمینی 11 سال 15 سال نفت ایران به قیمت بشکه 11 دلار فروخت نفتی که باید بشکی دو دلار باشه که تازه الان رسیده به بشکی ص در دلار قیمت نفته شما اگه بخواید با آدام سو نمی من پیناتباته رو یا آقا کارت رو آقا کارت میدونیم تاجر پینات باتر. خب چی میگم با آدا پ ای با آدا با آدم هست با بادام و نمی آب بسنجی با آب بسنجی سنجی باید بشکی 200 دلار باشه هنوز هم که وز ن بشکیصد در دلار فرض کنید روحانی و آقای خامی بیاد, بیاد بش ازتون پره البستان شما چکار میکن میری خونه؟ <تصفيق> خیلی جالبه فرض کن انقدر روابطی که اصلا ماحال این مسئله ماحال این مسئله که روابطش حتی بنزه زیاد و حق بشه ماحال این که روابطش بنزه اردوغان بشه فرض کن روابطش مثل پادشا عربستان بشه خب که چه شما دیگه نیا بگی زن عربستان بایستی بتونه رانندگی کنه خب این چه آپوزیشن هستی شما اگر در حکومتیه که در حکومتیم اگر آپوزیشنی اگر نمیدونیم اپوزشین چیه در حقا اداشت باید داره خلصیل های گروه های چپ که خدا زده امپریاریز میدانستن ترکیدن بغض ملت ایران از استعمار پنجه ساله ایران میگن دلائلیست که هزبلایی میارن برای اون سیزده آبان تسخیر سفارت آمریکا و آغاز گروگانگیری که همون موقع خمینی بیان بیده که جوان ها مطمئن باشن آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنن یکی از این هزباللهی ها نوشته بود که مرگ بر آمریکا رو به ما بخشنامه نکردن که حالا با بخشنامه برش دارن خب دوستان این هستی از, از سیزه آبان بعد الان که دیدی که وقتی آقای روحانی جانتون رفت برگشت لنگی کپش استقبال کردن ازش سه رویداد داده تبعید تبایید خمینی در 1143 به ترکیه کشدار دانانش آموزان در 13 آبان 1157 در دانشگاه تهران تسخیر و تصرف سپارات آمریکا دخت در, در 13 آبان 1158 به اسم مبارزه با استکبار حالا اعتراضات خمینی به شاد چه بود که خمینی رو تبعیدش کردند این که مثلا زنان چرا دارن مدرسه میرن همین اعتراضاتی که طالبان میکنه در امخانستان مدالا بچه ساله رو منفجرش میکنن این چرا نظام وظیفه میرن آخه شو آورده بود یه سری خانواده رو می‌برد نظام وظیفه و لباس افسری می‌پوشیدن اینا چرا زنان به مدرسه میرن به البته الان تو کتاب‌های درسی تغییرش دادن که خمینی اعتراض می‌کرده که چرا کاپیتولاسیون هست کاپیتولاسیون هم که همون است که حتی آقای نوری مالکی هم بهشون نداد یعنی دلیلی که اینا نیروهاشون رو از عراق خارج کردن این بود که می‌خواستن جای کپتالاسیون برقرار کنه یعنی که اگر سرباز فلان با ارتش آمریکا در عراق مرتکب جرمی شد اونا وردنن بزنن تو اواپی بیارن آمریکا و نتونن دادگاه عراق بهش حاکمیت نزاشت باشن که آقای نوری مالکی و این به قول کیانونش همین نوکرانیش خود گذاشت گذاشتن زیر بار این مسئله نرفتند آها که البته ساوات اون موقع مینویسه چون تحریکات خمینی علیه منافع ملت و امنیت و تمامیت ارضی تمامیت ارضی هم که قصه است که عماتون بلدید که شروع است شد خمینی رو تعقیب کردن در یازده آبان و در یازده آبان دانش آموزان ما رو به تیر گلوله مستریم بسند در 11 13 آبان در 13 آبان سفارت آمریکا رو تسخیر کرده. دوستان حکومتی که به زور و جنگ و قهر شهروندان خودش رو خاموش و خفه کرده و میلیون ها نفر از اون دیار و موتن خودشون رانده و میراند و وقتی قرن میشن جش میگیرد آیا سران این رژیم اصلا معنا و مفهوم سر را میدانند؟ اینها اگر بخوان با کسی سر کنند اول کسی که دو نوبته ما پنج میلیونیم که در خارج هستیم اینا اگه اگر اهل صلح بودند اول از ما مذارت خواهی میکردند به جای اینکه یه مش چیزو ببرند اونجا تو سفارت خونه ضعیف و نفس و اونا ازشون بخوانند اونا اول باید از ما مذارت بخوانند که سی سال ما را آواری کرده همونطور که عرض کردم در اول عرایزم نقش جمهوری اسلامی در منطقه رابطه مستقیم داره با ماهیت و ذات پلیدش و سرشت کسیفش و جدا از هم نیست ذات کسیف جمهوری اسلامی چی است؟ طبخ کاری، سرغت دارایی های یک ملد عزف فیزیکی و اجتماعی مخالفان و دیگران اندیشان محروم کردن شهروندان کشور از تحصیل و داشتن شوق و نابود کردن زندگی اونها ترویج فساد و جهل و سانسور و قتل و بیسوادی من به سانسور که نویسنده ها از محمود دولت آبادی بگیر تا همه که چی گفتن قبل از اینکه اتاق رسپن باز بشه شهر دادم الان دوستان دوباره بخوان باز اونها رو شهر میدم عطب زنان از سیاست که یه مغوله خیلی چیزشه محدودشه نقض حقوق زن نقض حقوق کودک نقض حقوق کارگر نقض حقوق عقلیت نقض حقوق انسان به طور کامل فریب و سوء استفاده از مردم با تکیه بر خرافات مذهبی و جهل آنها و فریب جهانیان برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و اتمی در جهت تحکیم و بقای این نکبت و قدرتی که باعث تضییع یک ملت شده و پدیده فوق را نمایندگی می‌کند. ترویج توخش و ترور، شکنجه، تجاوز، حبس، شکستن قلم و فکر سانسور قلم و تفکر ممنوع کردن اندیشه به بازی گرفتن اعتقادات صادقانه مردم جرگرد جر تأمین منافع و مقاصد شخصی خودشه هزار تا آقون هزار تا داره از این جریان منتفه میشه. بس سلام پنج میلیون بیشه دیویس هزار نفره که کلید بهش انداختن کردن بردن اونجا رومین های صدبا موسیق ترکانده با. خودوسان این بحثو اگر میخواهید ادامه بدید باعث که جانوش عزیز رو داشته ادامه میدیم نقش جمهوری اسلامی در منطقه و سرنوشت شعور مغرب را و اما راجب به مغرب را می کند. پدویس سلام خوش اومدید. دوستانی که تازیداش واردن سلام خوش اومدید. علی فتا عزیز که بعد از ملت‌ها در اوتا میبینیمش. فردو عزیز کمونیست عزیز که اصلا همه سراقتون میگیرن کمونیست جان. فرید چاوشی تاکسیر عزیز. فریاد عزیز حامد همه دوستان خیلی خوش آمدید. و هستم در بحث شرکت کنید. بحث چی است؟ نقش جمهوری اسلامی در منطقه و سرنوشت شعار مرگ برون. شعار مرگ بر آمریکاشون از روز اول ساختگی بود، مفهوم و معنایی نداشت، بی... بدون منظور بود، غیر واقعی بود و ادامه پیدا بکنه یا نکنه فرقی نمیکنه. چون ماهیت رژیمی که تغییر نکرده و نمیکنه و عرض کردم ما 5 میلیون از زر اونها تمام شده. اید. اصلا از خاطرشون رفتیم و ما برامون این مهم باشه تا سر داره سر میشه اون کسی که به شما ب... مثلا من تحجیب می‌کنم بعضی وقتا میان و این ایران ترایبونرال میذارن و هشتران نفر میاد میره اون بالا و میگه بفرما میگه اینجور کردن اونجور کردن برادرم اینجور کردن خب چرا نشستی اون بالا داری توزی میدی؟ آدرس محمدی رو نداری؟ خب این از ای کالیس که سوریه میکنه این کاریست که مصر میکنه این کاریست که لیبی میکنه این کالیس که ملت ها این کالیس که امریکا میکنه امریکا میدونی درگیر جنگ داخلی چی شده آب را کردن وقتی خواسته ها رو آزاد کنه چند سال طول کشیده ایرلند شمالی میدونی چند سال جنگ کرده همینجور مفت و مفتی ها میخوان حقوق بگیرن از وزارت اطلاعات یا میخوان مفت و مفت سوار کشتی آزادی بشن کشتی آزادی اینجوری راج میت کشی نوئه همون که تلاش تو اندینه به این کسی را نمیدن ما و شطر و اینام باشیر باید پاسپورت نشون بدیم <تصفيق> اینجوری نیست کسی کشتی <تصفيق> کشنی رو را بدن همینجوری اینست حالا بریم سر اینکه خب دوستان تا نوول نگیرن که هیچی اگه نوول نگیرن که ما میریم برنامه رو به جلو می میبریم برنامه که هست کنم خیلی من دور بیرن